شب. پاول پاولویچ با کمال راحتی در اتاق جا گرفته بود روی همان صندلی که شب گذشته سیگار می کشید و چهار رومین و آخرین لیوان شراب را ریخته بود نشسته بود یک قوری و یک لیوان چای نیمه خالی روی میز در پهلویش قرار داشت از صورت قرمز تیرش سادگی نمایان بود حتی فراکش را از آورده بود و با جلیغه نشسته بود ورچانی نفر را که دید فریاد کشید. ببخشید دوست بسیار با و از جا بلند شد تا فراکش را بپوشد من آن را بیرون آوردم تا بتوانم از این دقایق کاملا لذت ببرم ورچانی با حالتی تهدیدآمیز به او نزدیک شد آیا باز هم کاملا مزدید؟ آیا می شود با شما صحبت کرد؟ به نظر می آمد پاول پاولویچ کمی مشوش شده است نه، نه کاملا با تشریفات در مراسم ازایام مرحوم شرکت جستم اما نه کاملا آیا حرف مرا می فهمید؟ من جز برای فهمیدن حرف شما به اینجا نیامده ام. ولکانینوف باریده باریده فریاد کشید بسیار خواب ابتدا سخن خود را از اینجا شروع می کنم که شما آدم پستی هستید پاول پاولویچ که محسوس بود زیاد متوحش شده است با ملایمت گفت اگر این طور شروع میکنید چگونه تمامش خواهید کرد؟ اما ولچانینوف بی اینکه به او گوش بدهد فریاد میکشید دخترتان دارد میمیرد بیمار است او را رها کرده اید بله یا نه یعنی ممکن است که او بمیرد بیمار است بیمار بسیار سخت بیمار است شاید بحران کوچکی بیش نباشد یا نگویید بسیار سخت بیمار است باید بروید او را ببینید این کار را فقط برای سپاسگزاری برای سپاسگزاری از مهمان نوازی آنها بکنم خیلی خوب میفهمم آکس یوانوویچ عزیز دوست تمام عیارم با دو دستش ناگهان دست های ولچانی گرفت و با رقت قلب ظاهری آدمی شراب خاره مثل اینکه طلب بخشش می کند دست به فریاد گذاشت آلکسی وانویچ فریاد نکنید فریاد نکنید اگر من بمیرم یا اگر مست در این لحظه در رودخانه نواب بیفتم آیا این کار میتواند مفهوم کنونی موضوعها را تغییر بدهد و پیش آقای پاگورلتسف همیشه وقت داریم برویم ورچانینوف نفت دوباره بر خود تسلط یافت و کوشید که خود را نگه دارد و با لحنی جدی گفت شما مستید؟ و من حرف هایتان را نمیفهمم همیشه حاضرم فکر خودم را با شما در میان نهم. حتی خوشوقت خواهم شد که هرچه زودتر این کار را بکنم من رفتم اما قبل از هر چیز بدانید که من تدابیر لازم را اتخاذ کردم امشب پیش من خواهید خوابید فردا صبح شما را با خودم میبرم پیش پاگورال صفا خواهیم رفت شما را ول نمی کنم شما را میبندم و بغل می کنم و میبرم آیا این نیم تخت برای خوابتان راحت است و آن نیم تخت دراز و نرمی را که نزدیک دیوار مقابل روبروی پاول پاولویچ گذاشته شده بود و خودش روی آن خوابید به او نشان داد محض رضای خدا زحمت نکشید من میتوانم هر کجا که باشد نه نه هر کجا که باشد روی این نیم تخت بگیر این هم یک بالا پوش. یک ملافه یک بالش ویلچانینوف همه اینها را از گنج بیرون آورد و با اجل آنها را به طرف پاول پاولویچ که فرمان بردارانه دستهایش را دراز کرده بود انداخت. فران رخت خوابتان را پهن کنید. پنش کنید. پاول پاولویچ با دستهای پر، مردد و با لبخند ای که روی صورت گیجش نقش بسته بود و اتاق تا بی باقی ماند. اما بعد از دومین دو فریاد تهدیدآمیز ولچانینوف برای اجرای این دستورها با همه قوتی که در زانو داشت از جا پرید. میز را به کناری زد و نفستنان به باز کردن و گستردن ملافه پرداخت. ولچانینوف برای کمک کردن به او نزدیک شد. از وحشت و فرمان برداری مهمانش کاملا راضی بود. لیوانتان را بیاشمید و بخوابید. دوباره فرمان داد. برایش غیر بود که فرمان ندهد. خودتان فرستادید شراب بیاورند؟ بله خودم شراب را کاملا می الکسی اکسی وانویچ که شما دیگر این کار را نخواهید کرد خوب است که می دانستید اما باز باید یک چیز دیگر را بدانید برای بار دیگر به شما گویزد می کنم که اکنون تدابیر لازم را اتخاص ام. من اداها و شکلکهایتان را دیگر تحمل نخواهم کرد من بوسه‌های از سرمستی شما را دیگر تحمل نخواهم کرد. خودم میدانم، الکسی ایوانویچ که این کار را یک دفعه بیشتر نمیتوان کرد. و لبخند تمسخرآمیزی بر لبراند. راند. ولچنینوف که در اتاق راه می‌رفت، به محض شنیدن این جواب ناگهان پیش روی او ایستاد و با لحنی جدی به او گفت: "پاول پاولوفیچ، با من راست و صریح صحبت کنید. شما باهوشید." این موضوع را بیشتر از یک بار فهمیدم اما به شما اطمینان می‌دهم که راه غلطی دارید می‌روید صادقانه با من صحبت کنید رک و راست حرف بزنید و من به شما قول می‌دهم که به تمام سوالاتتان جواب خواهم گفت همان لبخند طولانی و لبان پاول پاولوویچ نقش بست که کافی بود ولچنینوف را بیخود سازد دوباره فریاد کشید صبر کنید، مسخره بازی در نیاورید من با وضوح در صورت شما میخوانم تکرار میکنم حاضرم به هر گونه سوالتان جواب دهم در این مورد قول میدهم و نیز حاضرم به هر طریق رضایت خاطر شما را جلب کنم میگویم به هر طریقی ممکن و غیر ممکن آه چقدرم میخواست که منظور مرا من بفهمید پاول پاولویچ در حالی که با احتیاط نزدیک میشد گفت چون شما تا این اندازه خوب هستید. پس به شما خواهم گفت که بسیار مایل بودم بدانم دیروز منظورتان از آدم درنده چه بود؟ بلچانینوف توفی انداخت و دوباره تون تر در اتاق قدم زدن پرداخت. <تصفيق> نه، الکسئی وانوویچ توف نیندازید من راستی بسیار مایلم و مخصوصا آمدم تحقیق کنم زبانم لکنت دارد البته مرا خواهید بخشید من خودم در مجله در فصل انتقاد آن مقاله‌ای درباره آدم‌های درنده خو و آدم‌های فرشته خو و مهربان خواندم امروز صبح ای مطلب به آمد فقط فراموش کردم و راستش را بگویم خوب نفهمیدم میخواستم این نکته رو روشن کنم آیا مرحوم استفان میخوایی لوویچ آدمی درند خود یا آدمی فرشت خوب و مهربان او را در کدام دسته باید جا داد؟ ولچانینوف همونطور ساکت بود و از راه رفتن باز نمی آدم درند کسی است که؟ و ناگهان از اثر خشم متوقف شد. مردی است که در موقع برخورد دلپذیر خود با باگاوتوف هنگامی که با او شامپانی می نوشیده است همانطور که دیشب با من نوشیدید در لیوان شرابش زر ریخته باشد اما تابوتش را تا قبرستان همانطور که شما امروز صبح کردید مشایعت نکرده باشد و فقط شیطان می‌داند که شما از چه اسرار نافذ و منفور و پنهانی اطاعت می‌کردید و علت اداها و شکلک‌های ننگین شما چه بود ننگین برای خودتان پاول پاولویچ گفت راستی هم او را مشایعت نکردم اما برای چه اینطور با من رفتار میکنید؟ و ولچنینوف بی اینکه به او گوش بدهد فریاد میکشید و بیش از پیش از جا در میرفت این انسان نیست کسی که خدا میداند خودش را چجور آدمی میپندارد و در صدد احقاق است که خیال میکند دارد. و دشنامهایش را مثل درس از بر دارد و خودش را قصدار وانمود میکند شکلک درمی‌آورد زبان بازی میکند با اشخاص دست به گریبان میشود و می‌بیند با این ترتیب همه وقتش می‌گذرد آیا درست است که می‌خواستید خودتان را به دار بیاویزید راست است در حال مستی شاید پرتو پلا هم گفته من چیزی در این باره به خاطر ندارم برای مالک سیوانوویچ زهر دادن شایسته نیست وانگهی من کارمند با مرتبه ای هستم ثروتکی دارم و برای مقدور است که دوباره ازدواج کنم و بعد هم شما را برای اعمال شاقه خواهن فرستاد ها بله در این مصیبت هم باید بررسی کرد هر چند که در زمان ما دادگاه ها تخفیف زیاد قائل میشوند و درست الکسی وانوویچ امروز صبح در کارسک حکایت کوچک خندهداری به خاطرم آمد که می خواهم آن را برایت بگویم این است الان گفتید با اشخاص دست به گریبان می شود شما شاید سمیون پتروویچ لیفتوف را به خاطر می آورید. وقتی شما در شهر ت بودید او به منزل ما آمد باری برادر کوچکش که او هم در نظر دخترهای جوان و زیبای پترزبورگ بسیار با ارزش بود با حاکم بستگی داشت و او هم از خود خصائص درخشانی نشان میداد روزی با کلونل گولوبنکو در برابر خانمهای زیادی که محبوبش هم در میان آنها بود اختراف نظر پیدا کرد و حس کرد که به او توهین شده است اما آن توهین را قورت داد و خشمش را فرو برد در این بینها کلونل در محبوبه او دمید و او را خواستگاری کرد و فکر میکنید که بعدا چه شد این لیفتسف سمیمانه با گلوبنکور رفیق شد کاملا با او آشتی کرد باز هم جلوتر رفت اصرار کرد که ساقدوشش بشود و تاج عروسی را بالای سرش گرفت اما هنگامی که تشریفات پایان یافت برای تبریک گفتن و در آغوش کشیدن گلوبنکو جلو رفت و در همان لحظه با فراک با سر فرزده در برابر حاکم و آن مجلس اعیانی چاغویش را با شدت در شکم گلوبنکو چاداد. و در نتیجه گلوبنکوی او بر زمین نقش بست. چه ننگی ساقدوش خودش و قصه هنوز هم تمام نیست بدتر از همه به محض اینکه که ضربه خود را وارد آورد خود را روی کسانی که او را احاطه کرده بودند انداخت و میگفت آه چه کردم چه کردم و اشکش سرازیر شد میلرزید دست به گریبان میهمانان حتی خانوم میشد و هی میگفت آه چه کردم الان چه کردم <تصفح> جاداش که انسان از خنده بمیرد صرف نظر از گلوب انکوی بدبخت او به خوبی از عاده کار خود برآمده بود ولچنینوف ابروان خود را در هم کشید و با لحنی جدی گفت نمیدانم به چه علت این واقعه را برای من تعریف کردید پاول پاولویچ گفت زیرا در این لحظه به خاطرم آمد مسلما او انسان نبود آدم شوریدهی بود چون از وحشت بدون رعایت هیچگونه ادب و احترامی در برابر حاکم دست به گریبان خانوها میشد. اما در همان لحظه چاغور را به شکم خودش هم فرو برد. او به مقصود خودش رسیده بود. آنچه را که میخواستم به شما بگویم همین بود. ناگهان ورچنینوف مثل اینکه چیزی او را در هم شکسته باشد با صدایی که کاملا تغییر یافته بود فریاد کشید: "بروید گم شوید با این کثافت های پستتان. شما جز یک کثافت پست چیز دیگری نیستید. بروید گم شوید." خیال میکنید مرا میترسنید هی جلادان کودک آدم پست متفن، متفن متعفن خود شده بود نفسش تنگی میکرد و بلند فریاد میکشید پاول پاولویچ از جا جهست مستی از سرش پرید و لبهایش میلرزید من باید شما رو متعفن خطاب کنم الکسی ایوانوویچ حالا شما مرا متعفن خطاب میکنید شما ویلچانینوف دوباره به خود آمد و بعد از یک لحظه سکوت گفت من حاضرم پوزش به طلبم تیره شده بود و به نظر می که تردید دارد اما تنها به این شرط که فوراً موافقت کنید با صداقت رفتار کنید من اگر به جای شما بودم هیچ شرطی قائل نمی شدم الکسی ایوانوویچ ویلچانینوف پس از اینکه دوباره سکوت کرده بود گفت بسیار خوب باشد من پوزش می خواهم اما خودتان در این باره آن کنید پس از آن چه که گذشته است من خودم را هرگز و به هیچ وجه بده کار شما نمیبینم برای همه چیز میگویم نه تنها برای آن چه که واقع شده است اهمیتی ندارد این حساب ها به چه درد می پاول پاولویچ این را گفت و در حالی که به زمین نگاه میکرد کرد خندید اگر اینطور است بسیار خوب بسیار خوب شرابتان را تمام کنید و بخوابید زیرا ولتان که نخواهم کرد. پاول پاولویچ آشفته به نظر می آمد. آه، بله، شراب. به میز نزدیک شد و آخرین لیوان را که مدتها بود ریخته بود برداشت که بنوشد. بیشک قبل از اینکه به خانه ولچانی بیاید زیاد نوشیده بود. زیرا اکنون دستش میلرزید و یک قسمت از آن را روی کف و اتاق و پیراهن و جلی ریخت. اما تا آخرین قطره آن را نوشید. انگار راستی برایش غیر ممکن بود که این کار را نکند. با احترام لیوانش را روی میز گذاشت و با فرمان برداری به رخت خوابش نزدیک شد و لباسش را درآورد. وقتی یکی از پووتینهایش را درآورده بود و در دست گرفته بود معلوم نشد که برای چه ناگهان پرسید؟ آیا بهتر نیست شب را در اینجا نگذرانم؟ ولچنیوف به اینکه از راه رفتن بازیستد و به اون نگاه کند با خشم جواب داد؟ نه این کار بهتر نیست پاول پاولویچ لباسش را کند و خوابید یک ربعه بعد ولچانینوف هم به نوبه خودش خوابید و شم را خاموش کرد او مسترب بود و نمیتوانست به خواب رود ناگهان چیز بی به نظرش رسیده بود که در فکرش بیشتر این کار را در همام و هم نمودار می سخت. این مطلب او را مسترب می کرد و در عین حال بی اینکه که بداند برای چه از این استرابش خجل بود در همان لحظه‌ای که می‌خواست به خواب رود صدای خفیفی ناگهان او را بیدار کرد. فورا نظری به رخت خواب پاول پاولویچ انداخت. سراسر اتاق را تاریکی فرا گرفته بود. پرده های دو طرفی کاملا افتاده بود. با وجود این به نظرش آمد که پاول پاولویچ هنوز نخوابیده است. در روی تخت خوابش نشسته است. ولکن از او پرسید. شما را چه می شود؟ پاول پاولویچ پس از یک لحظه سکوت با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت: یک شب. چی؟ کدام شب؟ آنجا. در همین اتاق. جلوی در شبی به نظرم آمد. شبه چی؟ ناتالیا واسیلیفنا. ولشانی برخاست. همانطور که روی قالی ایستاده بود از میان اتاق کفشکن نظری به اتاق مجاور که همیشه درش باز بود انداخت پنجره ها پرده های دو طرفی نداشتند فقط نیم پرده های نازکی جلوی آنها آویزان بود از این جهت خیلی بیشتر روشنایی میدادند در این اتاق چیزی نیست مستید بخوابید و دوباره خوابید و خود را در ملافه بیچید پاول پاولویچ چیزی نگفت و او هم دوباره خوابید بعد از ده دقیقه ناگهان ولچانی پرسید سابقا هیچ شبه ندیده بودید؟ پاول پاولویچ شمرده و آهسته جواب داد چرا؟ یک بار به نظرم آمد بعد از نو سکوت حکم فرما شد ولچانی به تحقیق نمیتوانست بگوید که آیا به خواب رفته بود یا نه اما یک ساعت گذشته بود که دوباره ناگهان برگشت آیا تماس خفیفی او را بیدار کرده بود؟ در این بار چیزی نمیدانست. اما به نظرش آمد که در وسط اتاق چیز سفیدی از تاریکی کامل جدا می شود و به طرف او می آید و روی تخت خوابش نشست و یک دقیقه کوشش کرد که تاریکی را بشکافد با صدای ضعیفی گفت شمایید پاول پاولویچ صدایش که در اتاق و در تاریکی میپیچید. به نظرش عجیب آمد هیچ جوابی دریافت نکرد دیگر هیچ جای تردید نبود کسی راست در اتاق ایستاده بود شمایید؟ پاول پاولوویچ؟ این جمله را با صدای بسیار قوی تکرار کرد و حتی به قدری قوی بود که اگر پاول پاولویچ به خواب امیغی فرو رفته بود محققا بیدار شده بود و جواب داده بود دوباره هیچ کس جواب نداد اما به نظرش آمد که این هیولای سفید که به زحمت تشخیص داده میشد باز بیشتر به او نزدیک می شود و ناگهان احساس عجیبی که چند لحظه پیش به او دست داده بود از نو جان گرفت دوباره چیزی او را در هم شکست و احمقانه با هیجانی شدید با تمام قوا دست به فریاد گذاشت در هر کلمه صدایش میگرفت اگر تو مسخره ماست، هست میکنی می این فکر را به خود راه بدهی که لیاقت اینو داری که مرا بترسانی ترسانی من رویم را به طرف دیوار می سرم را میپوشانم و حتی یک بار هم در تمام مدت شب بر تا به تو ثابت کنم که تا چه اندازه پابندم به حتی اگر تا صبح همینطور به مثل یک مسخره و من به رویت توف می به طرفی که گمان میکرد پاول پاولویچ است با خشم توفی انداخت. و ناگهان به طرف دیوار برگشت و همانطور که گفته بود خود را در ملافه پیچید و با این وز بی حرکت شد سکوت مرگباری همه جا را فرا گرفت. اگر سایه نزدیک میشد یا اگر بر سر جایش می ماند او نمی توانست بفهمد اما قلبش میزد میزد میزد. پنج دقیقه سپری شد و ناگهان در دو قدمیاش، صدای ضعیف و استرهامامیز پاول پاولویچ بلند شد من بلند شدم آلکسی وانوویچ برای جستن و یک شیء ضروری خانه را اسم برد آن را نزدیک تخت خوابم نیافتم بی این که سر و صدایی راه بی میخواستم نزدیک تخت شما را نگاه کنم ولچانینف پس از نیم دقیقه سکوت با صدایی باریده باریده پرسید بس چرا؟ وقتی فریاد کشیدم جواب ندادی؟ ترسیده بودم شما بسیار بلند فریاد کشیدید و من ترسیده بودم آنجا در آن گوشه طرف چپ نزدیک در در قفسه کوچک شم را رو روشن کنید پاول پاولویچ به جانب آن گوشه رفت و با شرمندگی گفت به شم احتیاج ندارم ببخشید آلکسی ایوانویچ که خواب شما را آشفته کردم ناگهان خودم را کاملا مست یافتم اما ولچونینف دیگر جواب نمیداد دراز کشیده بود صورتش را به طرف دیوار چرخانیده بود و تمام شب را به اینکه حتی یک بار برگردد همینطور گذرانید آیا میخواست به قول خود وفا کند و ناچیز شمردن این قضیه را نشان بدهد خودش هم آنچه را که در وی گذشت نمیفهمی این ضربه عصبی که به او وارد آمده بود خیلی شدید بود تقریبا مدت درازی هزیان گفت و نتوانست به خواب رود فردا صبح ساعت نه بیدار شد و ناگهان مثل اینکه او را تکان شدیدی داده باشند بلند شد و روی تخت خوابش نشست اما پاول پاولویچ دیگر در اتاق نبود جز تخت خواب خالی در هم بر هم چیز دیگری پیدا نبود اول سپید دم جیم شده بود ورچنینوف در حالی که به پیشانی خود میزد گفت در این باره یقین داشتم